الحمد <سؤال> لله رب العالمين لا اله الطيبين والطاهرين المعصومين على اللهم رو از کتاب سیوتی از صفحه چهر و چار و پنج تا صفحه 148 و و از و تو 144 اما تفسیرش رو و به 148 در زیل آیه کبائل و این ببایت رو ابن حبان و جماعتی کردن به قول اینجا تعبیر اینجا حبیب بکر ابن محمد ابن عمر ابن حزم یا حالا بعضی نویسنده ها ابو بکر حزمی به اختصار چون خود این ابو بکر شخصیتی بود علاوه از اینکه جدش اون نام رو داشته و از طرف قبل از عمر بن عبدالعزی خلیفه بشه قاضی مدینه بود خود عمر بن عبدالعزیخه مدتی عمر والی خود مدینه بود از طرف بنی امیه قاضیش همین ابو حزمی بود و بعدم که خود به اصطلاح امره نه عزیز به سلطرد رسید به حکومت رسید این آقا را هم امیر مدینه کرد هم به اصطلاح امیر کرد و هم بازی خیلی اعتقادش خب مرده خیلی ظاهر و صلاح و خیلی پهل عبادت و تحجد و از در کتاب اهل سنت از ذنش نهر کردن که چه سال این شبها ها تا صبح فهروشه به زمین نگذاش به اصطلاف اینجور نور کرد. به حسی که برای اثر کسیت سجود هم جوهش و هم بینیش به اصطلاف اصلا بقال هر و اصلا برده بوده تمام مجروح کرده بود پیشانش بینیش این ابوبک نوه اون امر ابن هست خود امر ابن هست من معلوم میشه مرد فعالی بوده چون اعز کردم که بر کتابی با ایشان به من فرستادن در کتاب بردستان وقت عمر شیفده سال بوده به عنوان والی یمن پیغمبر فرستادن و این منطقه از یمن خیلی با جوان باشه از 15 سالگی تو هر جنگ خندر شد شرک و در گفت ده سالیگی ایشون رو به یمن فرستادن علایه حاله این دیروز من نکات رو ارز کردم که ایشون ابو بخ نوی این شخص این کتاب جدش شده داشته اضافه برگو از کردیم که سنن امره من دیروز از کردیم که شون دختر اموی این شخصه نه اشتباه که انصاری هست انصار هست اما دختر امویشونیست خاله ایشانه امره خاله این ابو بخر حزمیست که والی مدینه شد از کردیم شخصیتی بوده توی مدینه خیلی ظاهر و سلاح و خیلی اهل، تقویه و این حرف و این مطلبی که گفتم دختر اما اشتباه کردم اما بعد که مراجعه کنم و از بزره حلیت خودم تو هاشی موجود نوشتم و یادم برسیدیویست علا یه حالا ایشون خاله این شخصه نه دختر اما این شخص و این خانم هم به اصطلاح از جز صحابیات نیست امده معرفتش به پیش آیشه بوده تصادفاً تا وقتی هم آیشه در کرده یه چیزی حدوده مثلا استخورده این سالش شده خیلی هم بزرگ نبوده اما احادیثی رو نوشته بوده ظاهرا اینطور طور به میاد که آن آئشه هم رسول الله و چون بعضی معلومات تو دیوزه ارس با باید شدیم در این کتاب آیه گروژردی ارس کردن که سنن عمر نوشته چون بطماره که حافظم خراب شد مراجعه کردیم در این چاپ جدید جمال احادیس هم تیه مقدمه جمال احادیثی. جمال احادیث جلد اولش دو سه تا مقدمه داره یکیش مال خود ماردو آل بروجردی مفصل نوشته یکی مال آزاده ایشان یکی مال اون آقای که کتاب رو جمع کرده آقای محلاتی رحمت الله علیه. آقای حاشیه علیای حاله یه مقدمه ای رو آی بروجردی در تدوین حدیث و تاریخ حدیث و این خصوصیات نوشتن و مواصل بذارت اینا رو مسرح کردن مقدمه طولانی است که این به قلم خود آی بروجردی است. دیشب باز مراجعه کرد من تو زیادم بود که از اون چاپ قدیم سنن امر داشتی آقا اما در این چاپی که من الان نگاه کردم این چاپ اخیزشم صفحه 28 جلد اول البته آی برو مطلب را از جلال سیوتی زادن نهارو حالا خودشون نیست از جلال دین سیورتی. اونجا داره که امرهو او... امرم لعب العزیز به این شخص عبی حزمی نامه می نیسته که جمع بکنه سنان رسول الله و عنیت به علیه سنت و حدیث عمر دو مرتبه اینجوری آمده تو کتاب آی تو که احادیث تو اون مقدمه‌ای که به قلم خدای بروجه دید دعاشون اون مقدم به قلم خدایشونه در اونجا داره سنت و حدیث عمر اون عمر که غلطه امره باید باشه اون عمری که اونجا آمده چون هیچ معرفی ننوشته که عمران عبدالعزیز ازش این مدلم رو خواست. اونی که نوشتن حدیث امرز. اینجا همین دو چاپ کرده. صفحه 28 جلد اول. اون معدمه خود مرحومات بروجه دی. دو مرتبه هم داره. دو سفحه بعد هم داره و کتاب علی عمران عبدالعزیز. الانی و حالا اگر این نسخه ای که من, چ... من چاپ آخر آخر ندارم قبل از اخیره. این نصر من باز نگاه کردم همین در هر دو جا عمر داره حالا آیا آی برویدی اشتباه نوشتن اشتباه چاپ شده جلال سیوتی اشتباه نوشته. و هر حال اون عبارت که اصلاح بشه چون خب گاهی مطالب جلیگه فهمیده میشه به آنسان رو خوبی نداره اونجا صحیحش امرق و انیف توبیله سنت و حدیث امره این امره خاله این عبی بکره به اصطلاح و ظاهرا مجموعه ای از احادیث داشته که ظاهرا از عایشه بود در رسول الله من تو ذهنم خیال میکردم که ایشون از جدش مثلا نه از عایشه به رسول الله برد و اما این مطلب که در کتب اهل سنت هست تا اونجایی که من دیدم در کتب اهل تو بعضی آشان داره که کتب علی یک تو به و احادیث امره یکیش اینجوری نشه تو بعضی داشت نشه یک تو به لبو حل علم امر علم داره به جای احادیث تو یکیش که از مالکه مالکه چرگزه خودشان اهل مدیده از مالک. مالک میگه این عوبر که این بود چرا بود و عمران عبدالعزیز بشنوش که ان یک تو به به علم ان امره که خالش باشه قال و لحن اون راوی میگه به مالک گفتم از سنن مراد از علم سننه قال نه چون من این میگوسم سنن امره در بحث قبلی متحیر بودم این عبارت هست اما در عبارت مالکه پس مجموعا اناوینی که هست این طوره سنت و حدیث امره احادیث امره العلم ان امره اینا برمیگرده به در واقع به خود آیش انسان رسول الله از وقت در کتب اهل سنت باز نقل کردن که عبی بکر حزمی اینها رو جمع کرد و مخصوصاً اون قسمتی که از خالش بود اونها رو هم جمع کرد نوشش این نوشته مجموعه اوراق تنزین جمع کرد و که عمر بن عبدالعزیز مرد و اینها هم به استلالتی دیگه به جایی نرسید در یک روز خود اهل سنت داره که به پسر این عبی گفتم این نوشته ها کجاست الان نوشته ای که پدر حبوبکر حزمی نوشته که از همین خالش و اینها فقال واعت گفت گم شده از بین رفته زایر شده اینم داره پس یک نوشته حبوبکر حزمی از جدش داشت که پیغمبر نوشته بودن همین که اینجا داره به کتب رسول الله الى اهل یمن کتابه في هلس هر ازاستون عادیه و, و بعث نه است این یک کتاب خوب روشن شد یک نوشتاری هم بوده که خود این عبی ذکر حزمی از خالش و غیر خالش و جدش و از دیگر تفدی مجموعه خودش جمع کرده بوده به عنوان سنت این یک چیز نوشتن زاعت اعت عبدالله یه از خسرش پرسیدم این نوشته ها کجاست بوده در حرافت از جمع کرده آمارند عبدالعزیز قال زاعت این راجبه چون دیروز مقدر افهم داشت توضیح کافیش و امروز ارز کردیم که راجبه این کتاب و تاریخ این کتاب این راجبه این و اما این که در این کتاب کبائر تعبیر کتاب اینه این وکان فر کتاب این اکبرالکبائر این دالله یوم القیامه از این عبارت انحصار در هفت در نمیاد که کبائر هفت است این دو تا نقطه تو این رووارد اضافه داره یکی اینکه اکور کباائره اینا از همه بزرگتر است اینها معیل همون نقطه ای است که من صر کردم که در ارتكاز عمومی این وقت این بوده که مردم هم عدده از گناهان رو کبیره می دونستند کبا میدونست بعدم داره انلله یوم من قیامه این بیشتر ناهیه به تجسم و ناهیه باطن و حقیقت و اون اعماله که اینها در به اصطلاح چون با ارز کردیم مجموعه روایات و آیاتی که ما داریم سه جور ترتیبه اثر داده شده در آیات و روایات یکی آثار دنیاوی مثلا کسی این کارو بکنه فقیر میشه، غنی میشه، پولدار میشه، بی پول میشه، مریض میشه، سلیم میشه یکی آثار برزخی که در برزخ مثلا مثلا هیوان درندهی برون میاد ماری برون سلط میشه یکی هم آثار اخراوی که میشه این ستا رو با هم دیگه با این تعبیر دنیاویش رو بگیم ترتب دنیاوی برزخی رو بگیم تجسم برزخی و راجع به آخرت هم بگیم تحقق به سا اخراوی در روز اونجا حقیقت اون حقیقت اعمالشی رسول الله در اینجا میفهند اینا که اندالله یوم القیامه در اون واقعش از همه اعظم هم هستن و در روز قیامت که یومه به اصطلاح کشف نوانه و تا قطاعه بسرک اون قطاعه بسرکر یوم حدیث. اونجا اینا از همه شدید ترن این هفته این میشه قایل این اینی هم که تعلیم و سهر رو پیغمبر اینجا فرمودن نه خود سر در راهت ابو خود سهر بود اینجا تعلیم بود این توضیحاتش در بحث سه احدیث اولاً چون در خود قرآن آمده فی تعلمون منه لذا این بحث مطرح شده که در باب سه تعلمش هم حرام است ثانیاً سوال همونجا هم توضیح دادیم تعلم صرف مثل تعلم فقه و اصول نیست که انسان این مطلبی یک کارهایی باید انجام می‌ده ولی که جن رو مثلا تسخیر بکنه شرایطی تسخیر بکنه اون تعلمش نیست برای یک اعمال زشت لذا اونجا خود تعلیمش هم حرامه همین که تعلیم پیدا بکنه حرامه چه بخواد اعمال بکنه این هم راجع به این روایت و دار تاریخ داره این ما در سال هفتم یا هشتم این کتاب رو پینامبر و خط خودشون نوشتن یعنی دستور بودن نامه خود راست ظاهرن منشه اساسی کمایر بیناس در بین احرستاند در درجه اول روایت ابو هریره هست اساس بعدم این البته این ما هنوز هم دیدیم این کتاب خیلی شهرت پیدا نکرد اصلا استثناء میشه، باقی بشه حالا آیا در شورای خلافت مخالفتی داشته چه اوزایی بوده هنوز برای من خیلی روشن نیست از جمله روایاتی که بله داریم اینجا باز از ادهی خیلیشون اسم بوده. از انس درباره باره کبائر قال رسول الله کبائر قال از شرک و بالله و قتل و نفس و عقوق الوارده اینجا سفه آمده و قال علا و نبع کن بهش برای کبائر بزرکتر و زور او شهارت و زور این قول زور به حرف کج و حرف باطل زور از که در عقیقت معنی باطل کجه اصلش آنه کجی قولی که کجی این روایت هم به خصوص الان نروز کندیم چون یه بحثی هست که زواهرش اینه که خود قول زور هم جزه کباهره قول زور جزه کباهره از خود آیه هم میتونیم استفاده کنیم. حالا که این که در این و قول زور یعنی قول معوج. قولی که فیه اعجا کن. کلامون فیه اعجا کن. وقت بگیم قول زور شامل کز میشه، شامل نمیمه میشه، شامل غیبت هم میشه. شه. زور خصوص دروغ نیست. کز نیست. قول زور کل کلام کلامفییه ژالان، کل کلام ل های در سات هر کلام کج اصطلاح اینه. و اینجا الان وقت در همون بحث صور هم متعرض شدیم ظاهر به اساعی مبارکه و وتن است اوسان و شلی از زور، عربه سمینر اوسان مقارن شده با قول زور که انما عربه سمینر اوسان در مقام حبائل اکثر کبائل اوسان و قول زور در صحنه اجتماع اکرار کبائل چون واقعا دروغ و نمیمه و قیبت و چون لغت در جامعه زبان و لغت در جامعه به معنای اساسه تمام روابط اجتماعی است ما همیشه از میکنیم کسی که منکر حجت زواهر بشه مثلی که در فرصفه کسی منکر وجود بشه میشه تو این کار حجت زواهر در عرب مثل اینکار وجود در فرصفه سر بنیمی بره. این قول از زور هم همینطوره وشتن و رست اونال اوفان وشتن و قول از زور اینجام داره قال الان منبع کن به اشتر کبائر. اصطلاحا میگفتن که این حدیث علیه شواهد نداده چون بخواهید فردا تو اصول بحث شواهد کتابو صدقت بکنید این شواهد کتابو صدق الان بگیم میگفتن این حدیث که اکثر قول زوره با ظاهر آیه نمی سازه و شواهد رساله اوطان چون اوتان رو با قول زور مغایر قرار داده پس میشه که جزء اکثر کبائر باشه بله در این رواب که پیغمبر فرمود به اینکه که اکتر و کبائر چیه؟ و عبوب و و کان متکعن فجلسه فقان الان و قول و زور یعنی بعد از این که اون دوتاها الان و قول زور. و, و زور الان و, و شهادت الزور زور فمازال یو کره هی مرتب حضرت اینه تکانی که الان و قول الزور زور الان و شهادت الزور حتی قلنا هو سکته اینقدر حضرت تحکیل کردن روی قول سور از کنم که بعده. بعد دیگه روایتی داره که من نمی خواهد بخونم یکی روایتی هم بوده که مصداقیه حالا اونم بخونی بعد این روایت اینه که ابن عباس قال کان یعود دلخمره اکبرالکباره حالا این یکی دردشم و اخرجی قرآن ان اب... شعبه مولا ابن عباس مولا نوک قلامش قال قلتول ابن عباس انل حسن ابن عهی امام مشتبه سوئل الخمر امن الكبار رهی فقال الله فقال ابن عباس فقال هم نبی پیخنبر فرمون الى شرب سکر و زنا را ترک صلاح فهیه منابی کبائر این یک مطلبی است که در روایات آمده که در خصوص اینکه ابن عباس قائل بوده که شور به خم جز به و اینجا علاقه به ما مشتبه توی یه روایات دیگه به همیر المومین هم نسمت داده که همیر المومین سوات الله سواماله فرمان خم و از کبائر نیست من ارز کردم هر دو باطل باشه اصلا مرموم صاحب وسائل اگر آن مراجعه کنن در جلد چاپ قدیم مرموم هرموان جلد هیتزه در باب اشهره ما من باب هشته باب نهه باب چنده. اصلا یه بابی داره باب انده هم در کباهه مثلا بابی کرده که شعبه هم این نسبتی این مختلف دعوی رو نومینی به امام مشتبه درست و غیر از این باد عدوار و بعدیش هم که من تصادفه نگاه کردم روایاتی که مشعره به این که جزه که همین استدلال همین استدلال ابن عباس که این جان هده ادار شربه سکر و زنا و ترک ترکت سلات فهی منعک همین به این استدلال ترات ما هم آمده لذا این مطلبی که ایشون در اینجا نقل میکنه این قابل اعتماد نیست از کلم من همه مطالب ایشون نمیخونی اون جاهایی که نکته داره متعرضش میشیم که روشن باشه. از جمله روایاتی که داره اینم از ادهه انه النبی، بله انه ابی حریره قال من اکبر کبائر استطالت المر فی ارز رجل المسلم به غیر حقه استطاله به علمه زبان درازی دست اندازی دست درازی کردن در آبروی مسلمان این باز اندن خودی ممکن است از این ربایت همه قیبت رو جزوه کبائر بگیری قال رسول الله صلوات الله صلوات من اکبر کبائر استطالت مره. انسان دست درازی بکنه زبان درازی بکنه فی ارز رجال مسلم به غیر حقه انشالا خواهد آمد که ادهی از موارد قیبت مجازه. این اشاره بیده. اگر انسان متعرض و آوروی مسلمان بشه بدون اینکه که جایز باشه این منعک و اینکباه اینم اینجا هر آن خوندیم برای اینکه که البته سرنش هم زیاده. ابو داوود و ابن عبی حاتم و ابن مردوی از ابی و ابن مردوی یا ابی حره و باز بله. یه دوال بیام از ابن عباس نارکن که این جعلی قطعه و اون که من جمعه بین از سلاته من غیر و همین کاری که شیعه میرم به استثنان خودیم بله مطلب درست نیست اما رسول الله مطلب دیگری است و رفتی به ما نحنفی نداره از جمله بعده عده زیادی البته من چون نمیخوام الان دنبال مجموعه روایات که با عنوان کبائر آمده بخونیم زیاد عرض که اگه جمع بکنیم حساب بکنیم از نزدیک شاید نزدیک در بعض زباطمون تا نزدیک بالای بیستا داریم اینجا بالای بیستا میشه بعضی شیه که خب واقعا نمیشم قبول کرد که ضعیف زعیف توش زیاده بله به همین مذابینه که الان عرض کردم بله حالا از اون طرف چیز عجیبی که الان من فقط برای یه نمونشی میخونم این همه رواد از عبی هره و غیر عبی هره رسول الله خیلی عجیبه. باز در اینجا داره که ان عبدالله ابن ان سالمون عبدالله تمار ان عبی عند هوابق و عمر و ناس من الصحابه خیلی عجیبه بعد وفات رسول الله صلی الله علیه و, علیه و, سلم و آله و ذکر و اعظم الكبائر فر نمی کنه اندون فیها علم و نیت تهون ال این همره واقع از رسول الله الان یک تهیری پیدا میکنه که اینجوری شده سو فرسلونی این شخص میگه الا عبد الله پسر این هم خیلی عجیبه چون عبدالله به سر انرآت ارز کردن حدود یجده ساله بودن اون رخ بعد از آفات رسول الله از المان انداله فا اخبرنی انعز من کبائر شور برخم این هم خیلی عزیبه اصلا رواده شور برخم نبوده سوشون فا اتیتون فا اخبرتون فا انک برداله و تواثبو اله پریدن به طرف او حتی اطاوه فیداری فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ تَحْدَّسُوهِمْ دَرْرَاهِ این در رجلا مرکم منبنی اسرائی یه قصه ای که بهش گفتود یا مثلا شراب بخورده فلان کار بکن فلان کار گفت نه نمی کنم شراب بخورده همون کار انجام داد. بعد راجع به به اصطلاح این مطلب توضیح میده. به نظرم نمیاد این آیه این دوابت قبول شده آن شواهد خیلی بره بر از جمده روایاتی که این معیل بحث ماست ان اک نه عباس باز داره قال کباعر على اشتراق و به الله لح الله تعال عبد لا ازله الله الله قوم کافرون این ما هم داریم تو روایات ما در باب کواائر روایاتتی داریم که هریه دونه از این کبااعری که گفته شده یه آی برش خونده شده که الان نمیخوام ب خیلی مفصله برای هر کداومم یه قی از جمله روایاتی که خیلی به درد ما نحن و میخوره که تشریص کبائل باشه و مرموم استادم ذکر نفرموده این روایت متعددهی داره که برمیگرده به ابن مسعود اینجا جمله اددهی نحن میکنن این ابن مسعود سوئل عن کبائل فقال ما بین اول سوره نسا الى رأس فلافین آی منها این خیلی عجیبه هم یک استظهار حدیبی ساله این تفسیر در کبائر نشیدیم چون این آیه انتشتنه با کبائر ما تنهونه هست آیه سی و سبون سوره نساس یا سی سوره نساس اگه بسم الله سی و چارم این آیه ابن مسعود میگه سوره نساس رو از اول بخونی تا این آیه اون گناهانی که در سوره نساس از اول تا این آیه آمده این کبائره چون چند تفسیر برای کبائره گفتید یک تفسیر هم اینه. بعد وقت به سند دیگه باز از ابن مسعود قال الکبائر من اول صورت نسا الا قولی انتشتن و کبائر رو ما تنهونه هم باز سند دیگه از ابن مسعود بعد همین طور بعد بعد همین مطلب رو هم از ابن عباس نقل میکنه همین مطلب رو از ابراهیم نخهی نقل میکنه کانو یارم. خاص کنم ابراهیم نخری از علمای معروف تابعینه که صحابه ذکر کرده و در کوفه بوده کوفه هم حرفشون حرف عبد الله مسعوده این کانویران یعنی اهل کوفه همین شاید شایده ابن مسعود بفت کانویران تعبیرش این خیلی عجیبه ان الكبائر ما بین اول هذه السوره سوره النساء سور اله الان دقت این هم یکی از تفاصیلی است که راجع به بله ام... کبائر در اینجا آورده همیسی تفسیرم جمعه بین سلاتین از مغیره مغیره کتن شعبه موزی شعبه هسته که مغیره بود همین کلاماتی بفرمه قاده مغیره کان یوبال شتم و عبی و عمر بینم کبائر اینم برای تکمیل کلام برستم که از ایشان از خودش میگه به می‌خوام یه قابل دیگه هست حتماً از سیاسی دادن خودشتون بله بعد راجع به متن خیلی خوب متخرم کریماً که الان بعداً توضیحی می‌دین در نظر می‌کنه ربطی که معنای بحث این راجع به مجموعه شواهد تاریخی اولیه ما در بین صحابه و تابعین راجع به کلمه کبار حالا اگر بخوایم اینها رو به صورت جموجور عرض بکنیم یه مقداری شده تقریبا مبانی خودشون انصافا هم قشن بورده این واقعا این آقای اسمش که قرطوی که به اسلام اموزیمون مثل غربیات مال اسپانیا بوده مالا بوده انصافا خیلی مطالب رو جم و در این مسئله به اصطلاح متعرض شده ایشون در زیل آیه همین آیه در سوری نسا بله. در این چافی که من دارم چاپ من شدن باشه. جلد پنج صفحه سد و پنجاه و هش در زید آیه با خودش دو مسئله در اینجا داره لمانه ها تعالا. این صفحه از بست شنید همه مطال رو خونه خیلی خوبه فیحاره سوره آسان. میگه چون تا اینجا, اینجا شماره سی و یک زده من سی سه گفتم اشتبه. سی یا سی و اگر بسم الله رو حساب بکنیم سی و دو برده و اینکه است و چرا حالا در مصحفهای بسیار قدیم مال قرآن دو بومن سه بومن حتی قرآن اولی که نسبت داده شده بعضی یه جوری شده که بسم الله آیه هست بعضی هاشی جوری شده که نیست اون نکات پندیش یه وقتی هستم نها ان آثام نهیه کبائه وعد علا اشتنابه ها از تخفیف من از و دل هذا على ان الذنوب كبائر و صغائر و على جماعت و تا اهل تعبیر و جماعه الفقها یک لکیفه ای در عبارت ایشان هست که مفسرین و فقها اینا قائلا به کبائر و صغائر در میگه اصولیین معتقد هستن که نه همه یکیه کبائر و صغائر بده خیلی تعبیرش شیریه دارید تعبیرش خیلی زیباست که اهل تعبیر یعنی مفسرین و که اقاها این تقسیم قبول کردن اصولیین قبول نکردن حالا من جای خوبی در اینجا تابعه اصولیین شدن نه که اقا خیلی این با این اختصارش تعدیر زیواری بردارم میخونیم و قالو انه لمسته و نورته تو کفر به اجتنابه نگاه و دست دادن بزن به وعده سزق و قول الحق لا انهو یجبا علیه داله بعد ایشون میگه بله. نزیل اگر آیه اشاره به آیه دیگه نمیتونه تو بت ارالله لذتی اعمال نمیکنه فلاحها الله یک فرز کوارب به اشتنب کوارب لکن به رمیمت اخره ایل اشتنب و هی اقامه فراز یعنی با اقامه فراز و اجتناب کوارب سوار خود به خود از بین میاد ولی زن این روایت ابرد راو مسلم انبی هر قلقله رسول الله صلی الله علیه وسلم از الصلوات و بخش و جمعه تا ال جمعه و رمضان تا رمضان مکفراتون ما بینهن اجتناب الكبائر خوب تعبیر خود ابن قر... خود قرطبی تعبیر زیبایی اقامه الفرائض و اجتناب الكبائر مکفراتون للسوائر تعبير جوره خیلی خوب بعد رو و ابوهاتون گستید روایت پیغمبر فرمود والذي نفسي بيده اون که جانم به دستوس سرات من ثم سکد سمغنا رو و بسنا که نفسي بيده ثم سکد فاکب بكل رجل مننا یکی حزیناً یامین ما شو کردن گریه گریه, گریه مون گرفت بخاطر این قسم پیغمبر که چی لیامین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ثم مقال ما من عبده یا عدس خرватر خانس و یاسوم رمضان و یاشتنه ول کبایر سب، ایلا فتح لهو و ابواب منر جنت یا ملقيامه حتی انها لتو سفر. یعنی این درهای به, این به هم میخورند. در این باز میشه که به هم میخواید سفر دیگری. تو متلا انتشتنه با کباهر ما تنهان نکفره هم کن این کن یه مدار گوزیم روایت سنت بخون از مسادرشون تا عاشنا بشن بعد میگه فقط تعاو در کتاب و صحیح و سنت به تکفیر سقائر قطعا کن نداره و و بیانت سنت ان المراد به تشتنه بو لیس کل الاجتناب لجمعه الكبائر و الله و الله و عمل اصولیون این مال فوقها رو مفسرین بود. فقال لا لایجه با علاقه تکفیر و سقائر قطعا نمیشه گفت و انما یا یخمر یا محمل داره یا محمل داره که علاقه لبت و قوت رجا امید به اینه و المشیعت و صافتتون لیکن الامرو بیاد الله این و این شایه لمیارزه قطعا اجتنابند حالا دقت کنید و دل الا دلیل بر این مطلب که ما در صغائر نمیتونیم قائل بشیم انه ولو قطعا لمجتنبل کبائر و متصل الفراир تکفیر صغائر ی اگر ببینیم این صغائر مکفرات هستند لکانت لهو فی حکم المباح این قاعده اصولی پس این مباه باید بشه اگر بنابرای شما بشه پس حرام استدلال استدلاله خوبی بلکه حرام حرام چون برمی کنه معصید خدا معصید خدا لکانت لهو حکم فی حکم المباه الَّذِي يُقْتَ بَاللَّا تباعت فی الَّذِي یعنی درش طبعی نیست درش لا تباعت لا عقوبت فی این مراد اگر این تور باشه اگر مکرفرات باشه اقوبت نداره اگر اقوبت نداره باشه حرام نیست و چطور میشه حرام اگر بگید مکرفراته مستلزم این است که حرام نباشه چون اقوبت نداره اقوبت هم که نداره حرام نیست وضاله که نقضان لعورش شریعه این معنیش اینه که عراجم عربه به اصال ریسمان ها و اون وسائل شریعت یکی یکی از بین بره ولذا ایشون نگونه قال عبد الرحیم القشیری و صحیحو انها کبائر اگر مطلبهای خوی در کتاب احاديث هم هست وناکن بعضها اعظم و وقعن من بعض اون وقت این صحبت میاد روایاتی هم که وارد شد چون مختلف در حضور کبائر خوب دقت کنید ول حکمت تو فی عدم تمیز که درست شناخته نشه ان بله عبدو جمیع المعاصی از بابی حکمه مالی هر گناه که احترام از کباهه ولی حکمتو فی عدم تمیز انیجتن بله عبدو جمیع المعاصی قلتو خود قرطبی ای من که ان من نظر الى نفس المخالفه همطور که آره کوئی نرف فرمزن محسیاتو به از اون کما قالو قال بعض هم لا تنظر الى سغر زند ولکن انظر الى من اصید کارت الزنوم بهاده نسبه کلها کبائق این, این مطلب را آقای خویی معصیت را کبیر کبیر از و علاها در نه وقتی وقت از بزرگان و اصولین رو ایشون نام میبره که اینا قائل بودن ما سقیره و کبیره نزاریم یو جو کلام القاضی عبی بکر طیب و استاد ابی اسحاق الاسطرالینی از شافعیه. و عب المعالی و عبی نصر قشیری و غیره معلوم که ادهی از بزرگان به اصطلاح قسولینشون و علماشون قاید هم فهم بسه مرمون مستان قالوه نما یقال به اضافت الى ماهو اکبر و منها كما يقال از زنا سغیرتون به اضافت الى و القبلت المحرمه سغیرتون به نسبت الى زنا ولا زن به اندنا یغفر بشنا بزن بالآخر این بوقاب و اصولی چیو در نمیده اشتالشون نوستن شد نمیشه شما گناه بکنید و یه گناهی که اون گناه از بین بره. این نمیشه. بر کل ذالکه کبیراتون و مرتکب هوفل مشیه. مشیه نه انشاءالله خدا بعده و انشاءالله قیل الخوف. خوف دیگه مشیه در نمیاد. لبودهی تعالا انالله تعال انالله لا یارترانیو شکبه و یه فرما دو نذالکه لمن یشان این مشیه از این, این میگه مشیعت معلقان مشی اینه او اخ این جای نکتهی داره که در این کتاب درول منصور نبود وحتجو آی خویم ذکر نفرمیدن به قراءت منقره انتشتن بود کبیر ما تنهونه هم از کلم سابقا لفظ کبیر و کبائر در اون وسمال خط اول قرآنی مثل هم نوشته میشود این چند بار توضیح داریم در خط کوفی علف متوسطه نوشته نمی حارث رو مثل حرس می نوشتن لذا مثلا حاشم و هشام. اینا اج... بلکه گادای حیثم حیثم و حاشم و حشان همه مثل حوشی و می این دیگه باید به قرارن توضیح که این از چیه لفظ امتشتن و کبائر این کبائر به نوشتن کبیر می نوشتن شون می قرار بظم انتشتن بو کبیر ماتون ها هست، ال توید ما را ج بهطورید این مفرد توده خدا یعنی سیغ جمع خووندن. وقت اگر این باشه انتشتن بو کبیر ماتون ها یعنی انتشتن بو شرک مراده از کبیر شرک انتشتن بو کبیر ماتون ها یعنی اگر شرک نباشه، نکث فرنگ خوب کن سیاضه کنم. البته به اون قرائنه آیه مبارکه ان الله لا یغفر ذنوب الشركه و یغفر ما دون ذلک لمن یشا با مجموعه این دو تا آیه خیر از شرکت به خدا میبخشه لمن یشا. روشن شد؟ وهتجو به قرائت من قررا و کبیر الاسم از شرک. و قالو اصلا که این نکته اگر من استاد نبودم اذن میشکرم و کلمات استاد حال و حتی اگر به سیله جمع بکنیم کبائر کبائر مراده از کبائر یعنی اقسام شرک دقیق بکنیم نه اقسام گناه مثلا ممکنه کسی کفت داشته باشه به اینکه مسیحیه یکی کفت داشته باشه به اینکه یهودیه یکی کفت داشته باشه به اینکه کمونیسته ای خود اون کفر انواد داره کبائر ما تنه هم حوشن سویش مخاربه این میگه مراد از کباله نه گناهان کبیره انوان کفره مثل انتشتنه با کبیره ما تنونه هم چون کفر هم برای در نتیجه کفره اما به شکلهای مختلفه اگر شما مسیحی نبودین یهودی نبودین کمونیست نبودین مرهد نبودین این مراد اینه انتشتنه باید و قالو و علالجنف هم مراد اجناس الحقه ولآيات التي غيرت الحكم فترد اليها هذه التي غيرت الحكم فترد هذه المطلقات كلها اون آیه قول او تعالی و ما دون ذلك لمن يشاء پس اگر انواع کف رو انسان نداشت از کف خارج شد پشتنه بود نکفر انکم سیاهاتی کن لیکن بازنیمه اون آینواره که نکفر انکم لمنیشا با مشیه بعد ایشون داره جو بله به ما رواه مسلم و غیره شبیه ما هم داریم پیغمبر فرمون من قطع حق امره مسلم به یمینه فقد او جبل لاهولهو اننار و حرم علیه الجهنه یعنی کسی به شوهر دوق بگه پیشه حتی حق یک مسلمان رو ازش بگیره این استحقاق آتش ده. فقال لهو رجل يا رسول الله و ان كان شيئا يسيرا قال صلوات الله و سلام علیه و انکان قریبا من عراث چه بسید همین به اثبات به حتی اگر یک شاهه عراث باشه یک شاهه اثبات باشه و این کانه تقریبا من هرار فقط جاهل و عید و شدید علی الیسر کما جاء علی الکبیر اما استدلال کسانی چون استدلال تو خودی این هم اضافات اضافه بر استدلالات استاد این استدلالات هم است و قال ابن عباس الکبیر تو کل بدان بن خطرهم الله بنار و او غضب و لعنت و عذاب این هم خوندیم از خود کتاب در قول بله ابن مسعود هم که کبائر چی اون اونم خوندیم این قول ابن عباس هم این سب امه فلان اینا رو خوندیم ایشون داره چند تا دیگه روایات و بعد, بعد از این که روایات رو ایشون میاره و منر کبائر اندل علما یعنی مخواد بی از مجموعه هم در میاد القمار و صدقه و شور برخم و صدقه ساله این صدقه ساله هم آورده. الان که وحابی هایتون رو که تکفیر بکن شیعر و خادر صدی و عدود الحکام اندالحق و اتباع هوا و یمین الفاجره و قنود و سدب الانسان عبره بیمون معنی و سعیف الارض فسادن الا غیر دالت اما یک سر تعدادهو حسن ماجاع بیانهو فی القرآن و فی بله و فی احادیث خرجه ها و اله و قد ذکر مسلم فی کتاب الایمان منها جملتاً وافره و قد اختلاف و فی تعدادها و احصائها و عقود بعد خود ایشان یک ضابطه برای کوابردیه چون چند ساعتی هست و خیلی تمام شد اینجوری فردا که بعدن زابطه. فردا اباض تمام که وارد شیعه میشه الله علی محمد مارده.